له مدت زیادی جرأت نکردم با پدرم حرف بزنم خودم را توی یک اتاق حبس کردم هفته ها مثل موشها و ها مخفیانه زندگی کردم سرانجام روزی جسارتم را جمع کردم و پیش پدرم رفتم در کتابخانه تک و تنها زیر نور شام نشسته بود. گفتم: اجازه می دهی حرف بزنم. سرش را آرام آرام طوری که انگار در دریای فکر و خیار به طرف ساحل شنا می بلند کرد و به من نگاه کرد. اما چیزی نگفت. گفتم: میدانم گمان می در گم شدن شمس من هم نقش داشتم. اما به تو اطمینان می دهم که پدرم انگشتش را بلند کرد و حرفم را برید. ساکت باش فرزند. نمی از تو چیزی بشنوم. حرفی هم ندارم به تو بزنم. از این به بعد میان ما کلمه ها با صدایی لرزان گفتم اما پدر عزیزم حقم را میخورید اجازه بدهید توضیح بدهم قرآن بیاورید دست روی قرآن میگذارم قسم میخورم من نبودم میدانم چه کسانی این کار را کرده اند اما من بیگناهم. گفت: پسرم انگار این کلمه زبانش را سوزانده باشد، صورتش در هم رفت. گفت، میگویی من نبودم، اما کناره جببه ات خون او هست. جا خوردم، فوری کنارهای جببه ام را وارسی کردم، یعنی ممکن بود، یعنی لکه خونی از آن شب باقی مانده بود. پارچه را با دقت وارسی کردم. تمیز بود. سرم را که بلند کردم با پدرم چشم در چشم شدم. و آن موقع بود که فهمیدم کلک کوچکی به من سده. با وارسی کردن جببه به دنبال لکه خون خودم را لو داده بودم. درست است؟ آن شب که توی میخانه نقشه جنایت را میکشیدند، من هم کنارشان بودم. از همه چیز خبر داشتم. حتی این من بودم که در گوش کل شغال زمزم کنان گفتم شمس شبها به حیات می رود. و شب جنایت یکی از شش نفری بودم که پشت دیوار باغ به صحبتهای قاتل و مقتول گوش می دادند. وقتی متوجه شدیم کل شغال خیلی دارد معطلش می و تصمیم گرفتیم حمله کنیم من بودم که به بقیه افراد راه ورود به حیات را نشان دادم اما همه اش همین بود توی دعوا شرکت نکردم در میان حمله کننده ها به شمس نبودم بی بود که حمله کرد ارشاد و بقیه هم کمکش کردند و کسی چه می داند شاید موفق نمی شدند و پا می گذاشتند به فرار اما کاری را که آنها نیمه کاره گذاشته بودند کل شغال کامل کرد گاهی به خوابم می آید هر بار به شکلی یک بار دیدم شبه شده و در اطراف می گردد. یک بار دیدم از نو به دنیا میآید. در یکی دیگر از خوابهایم داشت از چاه در میآمد. هر بار هم با دلی گرفته از خواب بیدار میشم. او دیگر نیست. اما ردپایش همه جا هست. سما، شعر. موسیقی، نکته، حجو، عشق و جذبه خیلی چیزها که فکر می کردم با بیرون رفتن شمس از زندگی من نابود می شود مثل ستون پا بر مانده پدرم هر جا که نگاه می کند او را می بیند شمس حق داشت یکی از شیشه ها که شکست شیشه دیگر هم با آن تکه تکه شد. پدرم از اول آدم نازکدلی بود. با اهل همه دینها و اعتقادها مدارا می کرد. بعد از آشناییش با شمس دایره محبتش چنان گسترده شد که حتی پسترین آدمهای جامعه را هم دربر گرفت. بی خانمانها دیوانه ها، جزامی ها، مست ها، روسپی ها، گدا ها، جیب بر به همه اینها ها بدون پیش داوری نظر کند و همگی را درد کند. حتی باور دارم که قاتل های شمس را هم می تواند اف کند. فقط یک نفر هست که دوستش ندارد. فقط من پسر خودش نتوانستم به دایره محبت پدرم وارد شوم.